Thank mm -hmm. you. فصل ششم در مورد دوران قبل از تصادف همه چیز توی ذهنم در و بر هم می شود. روزها پشت سر هم در نور لرزانی سپری می شودند. منتظر بودم ولتاژ بالا برود تا بتوانم واضحتر ببینم. امروز؟ وقتی دوباره فکرش را می کنم، می بینم فقط تصویر هلنواشین از مه جدا می شود. یادم میآید؟ روی شانه چپش خال داشت. گفته بود میخواهد چند روزی برود لندن چون آنجا پیشنهاد کار داشت و میخواست ببیند آیا واقعا کار جالبی است نه یک شب تا ایستگاه شمال همراهیش کردم تا سوار قطار شود. برایم کارت پستال فرستاد و نوشت به زودی برمیگردد پاریس ولی هیچ وقت برنگشت. سه سال پیش؟ تلفنم زنگ خورد. صدای زنانه ای شنیدم که میگفت: "الو، از هتل پالم تماس میگیرم. کسی میخواد با شما حرف بزنه." آقا، هتل پالیم تقریبا روبروی خانه او بود. در خیابان کوچکی که ساعت بزرگ ایسکالیون از آنجا دیده میشد. یک بار آنجا اتاق گرفتیم با اسمای ایو دنتیاک و پاتریک دوتروان. زن تکرار کرد: هنوز روی خط این آقا، الان وصل میکنم. مطمئن بودم خودش است. دوباره بین دو کلاس پیانو همگه را میدیدیم و شاگردها هم قطعه بالا روی هومل را تا ابد می زدند. مثل دکتر بویر که مدام دوست داشت بگوید زندگی یک تکرار ابدی است. صدای پارازیت روی خط شنیده میشد. مثل همه همه باد لای شاخ و برکها. همانطور که منتظر بودم گوشی را محکم فشار می دادم چون می ترسیدم بعد از سالها کوچکترین حرکتی باعث قطع شدن این تماس شود صحبت کنین آقا؟ لحظه ای خیال کردم صدایی مثل واژگون شدن مبل یا سقوط کسی از پلا به گوشم رسید الو الو صدا ما می مردانه توی زوغم خورد همان وز وزوز روی خط شنیده میشد از دوستای پدرتون هستم صدامو میشنوی هر چه میگفتم بله با صدایم را نمیشنید گی صوت گی صوت هستم حتما پدرتون در مورد من صحبت کرده من همکار پدرتون تو دفتر اتو بودم صدامو میشنوین به نظر می رسید این سوال را علکی تکران می کند و واقعا نگران نیست که صدایش را می شنوم یا نه گیل رسوت ما با پدرتون دفتر داشتیم ممکن بود فکر کنم دارد از یک مشروب فروشی پنجاه سال پیش شانزلیسه که غیلغال مردم حول کسب و کار در بازار سیاه و زنها و اسبها می چرخد تلفن می زند. صدایش خفه و خفهتر تر می شد و فقط جمعه های بریده بریده‌ای به گوشم میرسید پدرتون دفتر اوتو ملاقات چند روز تو هتل پالیم که میتونم باشون تماس بگیرم فقط بهشون بگین گیروسوت دفتر اوتو از طرف گیروسوت یه زنگ صداما میشنویم؟ شماره تلفنم را از کجا پیدا کرده بود؟ اسمم در فهرست مشترکان تلفن نبود با خودم فکر می کردم شاید این شبه از همان اتاقی زنگ می که قبلن ایوت دنتیاک و پاتریک دوتروان شب را تویش گذرانده بودند عجب تصادف مصحکی حالا صدا خیلی دورتر شده بود و جمعه بریده بریده تر شنیده می شدند از خودم میپرسیدم و یا میخواهد مرا ببیند یا فکر کرده پدرم زنده است و میخواهد او را ببیند کمی بعد دیگر صدایش را نشنیدم دوباره صدای چپ شدن مبل یا سقوط کسی در پلکان بعد صدای بوق تلفن و ظاهراً گذاشتن گوشی ساعت هشت شب بود حالا و حوصله زنگ زدن به هتل پالیم را نداشتم واقعا حالم گرفته بود منتظر بودم صدای هلن نواشین را بشنوم، در تمام این مدت چه اتفاقی برایش افتاده بود، آخرین باری که خوابش را دیدم، خوابم ناتمام ماند و او فرصت نکرد آدرس و شماره تلفنش را بدهد.